و بدنها وبنيها وصلى المستودع فيه و ما احاط به علمك اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فلجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباشمون در طب المعصومه مبحث الخل بحث سرکه طبیعی و تهیه آن و فواید آن و در صورت پرخوری یا نابجا خوری مذرات آن چیست حالا تو بحث فواید و انواع سرکه ها مومن ها مثلا اگر کسی پیشونی درد داره و سردردش ناشی از صفرا هست یا به خاطر هوای شرجی شمال منجیل ساری آمل یا هوای شرجی مثلا بندر انزلی یا جنوب مثلا کیش بندر انباس بندر بوشه مثلا یا اینکه از استخر سونا و مانند دو اومده و قبل از او آب نخورده قبل از استخ قبل حمام قبل از اینکه تو محیط هوای شرژی بره آب نخورده اینا دوچار سردرد میشه حالا یه مسکن طبیعی چیه؟ اینکه دستمالشو آغشته کنه به سرکه طبیعی میتونه گایی مخلوط با گلاب هم کنه و روی پیشونیش بذاره به عنوان یه مسکن طبیعی ها سردردشو ساکت میکنه کنه کمپرس سرکه یا کمپرس سرکه که در گلاب جوشانیده باشند روی پیشانی که بذارید برای موارد فوق نافع و مفید است این آقای دکتر میر حسین دکتر حسین میر در کتاب معارف گیاهی جلد دو صفحه 54 فرموده بخور سرکه به صورت رقیق برای ورم حلق و گلو در درمانش چیه؟ مفیده اگر خون مردگی در پوست بود دیروز تذکر دادید در درمانش مفیده و همچنین تسریع میبخشه به جذب خون مردگی وقتی که به صورت زماد یا پماد رو قسمت خون مردگی شما سرکه طبیعی میکشید یا میگذارید اگر کسی درد گوش داره و درد گوشش ناشی از سرماخوردگی شدیده یا صدای در گوش داره یا سنگینی در شنوایی گوش داره یا باز کردن گرفتگی گوش از واکس گوش و عفونت گوش چطور روغن بنفشه خالص مفید بود سرکه طبیعی مفیده چند قطره به چکونه کافی؟ تا سه قطره کافیه یه مقدار نگه می‌داره داره بعد روی همین گوش تا صبح میخوابه تو بحث کبد چر فیبروز کبدی سیروز کبدی بالا رفتن انزیم های کبدی در همه اینا فائده داره اگر آدم در سرکه طبیعی چه انگور عسکری چه سرکه سیب بیاد اسقیل با سین و قاف اسقیل یا اسم دیگهش پیاز دشتی اسم دیگهش پیازموش اینه یک چیزه بیاد سکنجبین آنسلی یا ترشیه پیاز دشتی اسقیل درست کنه تو سرکه طبیعی اینم برای همه اون مواردی که شماردن مفیده تو درمان کبد چرب نقش داره که طرز تحییش اینها رو تو بعضی از جلدهای هشگانه همین کتاب معارف گیایی دکتر حسین میرحیده بیان شده تو جلد دیگهش. یکی دیگه از چیزهایی که مفید مؤمنا در بیماری های لسته تورم لسته خون روش لسته، تورم لوزه ها یا تو محلول آب سرکه چه سرکه سفید چه سرکه انگور اسکری چه سرکه سیپ تو مبارسته خودمون حاج بخوام قدرت درمانشو بالا ببرم تو تورم لسته تو تورم لوزه ها تو خون روش لسته بخوام سرعت به درمان ببخشم با قدرت بیشتر میگیم اینجا گردوی نارس که اندازه فندق هست رو درخ گردوی نارس رو جمع میکنم در سرکه طبیعی ترش میندازن. در درمان اینا خوبه. ترشی گردوی نارست نیز بسیار نافع است. برای تهیه آن گردوی نارست را موقعی که به اندازه یک فندق است از درخت چیده در سرکه می اندازند و می گذارن تا خوب برسد و به صورت ترشی درآید. مصرف این ترشی نیست در تمام مواردی که برای تأثیر سرکه آنسلی که پیاز دشتی بود سرکه پیاز دشتی در بیماری های دهان حلق لثه زک شد این ترشی گردوی نارس موثرتر میباشد کسانی که خونریزی های داخلی دارند از جمله سوالی که بعضی شما بزرگوارم کردین کسایی که کس خونریزی داخلی دارن چطور برگ درخت انگور یا دلمه برگ انگور با رب به انار شیرین یا میوه به یا آب به یا مربای به توی جلوگیری و پیشگیری و درمان خونریزی داخلی مفیده آیا اگر کسی خونریزی داخلی داره مثلا رحمی یا پشت کره چشم اینجا قرص شیمیایی ترنسید ده عدد روزی یک عدد با ناهار بخوره؟ و همچنین معامنا سیب زمینی ورق ورقه کنه در روغن زیتون خالص برشته کنه این سیب زمین روزی دو مش بخوره. یه مش وسط روز یه مش اصلونه خونریزی های شدید بمیار حتی در زنانی که فیبروم رحم دارن یا بینی های مکرر دارن بحث استحاز شویی به نوع قلیله یا متوسطه یا کسیره چطور سویق العدس اینها خوبه یکیشم چی خوبه؟ سیب زمینی برشته شده در روغن زیتون روزی دوماش بخوره حالا یک دارو چیه؟ بحث خودونه اگر سرکه طبیعی یا ترشی سرکه طبیعی ها به نوعی که گفتم که گردوی نارست بود اگر تو جیره قضاییش بذاره مثلا روزی یک قشق پلوخوری بخوره همجوری بخوره یا به همراه قضاش بخوره در پیشگیری و درمان خونریزی های داخلی نافعه خوردن سرکه به تنهایی برای قطع خونریزی داخلی همچنین کمک به هضم قضا همچنین تحریک اشتها همچنین قطع صفرای اضافی و لجن سفروی همچنین باز کردن گرفتگی های ماساریقا با سین قاف ماساریقا مفیده. خارجی ها میگن مسین تری همچنین برای باز کردن گرفتگی های ماساریقا همچنین باز کردن گرفتگی های سپرس که تحاله زیر دنده چپه ده و رسانیدن تأثیر داروهای شیمیایی، گیاهی یا هومیوپاتی نوتاکیبی یا تو بحثای نانو مثل درکتیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی حالا بخواید به این سلولای بافت یا بخواید به این آز سریتر این دارو برسه و اثر بخشی مفید داشته باشه تو جیره قضایی مریض محلول آب باشه که قبلن تذکرم دادیم دو قاشق چای خوری سرکه طبیعی انگور ازگری یا سرکه سیب توی لیوان آب هم بزن مریض این یک لیوان محلول آب سرکه رو یواش یواش بخورد و باز کردن گرفتگی های مساریقا و سپورز و رسان میدن تأثیر داروها به تحال بسیار نافع است و مداومت خوردن او به صورت رقیق شده در صبح ناشتا برای قطع کرم معده کرم آسکاریس، کرم کدو و بخشی از کرمک ها و انگل های و روده مفیده نظیر تخم هندوانه به صورت خام که یه قاشه پلوخوری بخوره تفتاده و شور نباشه که زده انگل و کرم هست که دکتر محمد صادق روچان تو کتاب میوه درمانی آورده حالا تو بحث سرکه این آقای بزرگوار دکتر حسین میر حیدر تو صفحه پنج پنج دو از معارف گیاهی شورد کسانی که سوختگی پوست ناشی از سوختگی از آتش دارن و همچنین جلوگیری از زخمای بد و عفونی چه زخمای چرکی چه زخمای مقروح داره قرحه هی آبخون میده و چرک میده و اینا یا دومل داره یا زیگیل داره یا زخمای قانقاری داره برای همین موارد خوبه هم زده افونیش کنی هم تو درمانش نقش داره حالا بعد جاش افونت باکتریایی نکنه زرچوبه خالص بریزم اون یه مطلب دیگه است مالیدنش برای سوختگیهای عادی ناشی از آتش جلوگیری از گسترش زخمای افونی و بد اگزماهای متقرح یعنی اگزماهای پوستی که دارای دونهای چرکیه بازیش هم سر باز کرده خونابه یا افونت میشه خارش بدن مثل خارش بدن یادتونه مثلا حنا مرد با روغن زیتون یا شامپوی خاصی گفتیم بدن که مردم دوش حنای بیرنگم دوش صدرم دوش مختصری سرکه سرکه طبی و مختصری هم روغن زیتون این سطر قاطی میکنیم شامپوی یک بار مصرف طبی از تولید به مصرف و سر و بدنش بایی بشوریم خیلی فواید داره یکیش هم چیه خارش سر دونه های ریزه چرکی سر همچین خارش بدن و دونای ریزه بدن خوب میشه چربی اضافه و همچنین گرفتگی مجاری چربی به قدرد چربی از سطح پوست بزیر اینا هم باز میشه حتی موهای سر اینا برراب میشه پس اینا هم برای اتیک جلوگیری از گسترش زخمای افونی و بد اگزمای متقرار خارش بدن گزیدن حیوانات سمی گرم مثل انکبوت سمی مثل مار سمیه کویری مثل مار سیاه مثل مار افعی مثل مثلا زنبور گاوی مثل روتیل اینا حیواناتی هستن که چی اموجون سمشون گرمه به اصطلاح قدیم قلزت سم بالاست اگه سریع شخص به اورژانس نرسان مرگش حتمیه گر زنبور اگر حساسیت هم داشته باشه به نیش زنبور حتی اگر زنبور گاوی نباشه از این زنبور های ریز زرد باشه اینجا مبتلا میشه به بیماری شک آنافیلک اگر ضد سمش زود نره اورژانس بزنه پل بدنش پفله میکنه مومن ها کهیر میزنه و سپس منجر به مرگش میشه پس حتما باید بره پادزهرش بزنه ضد سمم زده رو باید بره حتما بزنه حالا تو مبارسه خودم ارجانس نیست چیکار کار کنم بلا فاصله بالاتر از نیش رو اگر سرعت عمل داشته باشی یا در زنبور و بعضی حیوان ها میان سوراخ میکنه با نیشش بعد کپسول سم رو میذاره داخل سراخ هنوز یک دقیقه نشده ها. این مایع بدن این پوست کپسول سم حل میکنه این کپسول میتره که تو بدن، سم پخش میشه اگر زرنگ باشی و سرعت عمل داشته باشی چون مثلا زنبور نیش زد سری سریع با موچین دست متمایل به نور بگیرید با موچین نکه این کپسول سم بگیره از تو پوست در میری قشن در میری اینه شبیه یه قطر آب که میخواد بیافته ها. کپسول سم زنبور این تاریه امون بعضی حیوانت نیگه هم همجورن ها بعضی ها مثلا سمشون میپاشونن بعضی ها سمشون داخل کپسوله حالا این بحث کپسولی حالا در هر دو مورد احتیاط عملی چیه سریع تر بالاتر از سمو با بند کپشم میبندم موکم که خون از جریان بیافته بعد قسمتی که سم بوده ها یه خراش زردنی میدیم بعد میچلینیمش سمو و مایعات خونی بیاد بیرون جاش رو شوچگاه میکنی پودر نمک سنگ بهداشتی باشه. یا نمک دریا اما نمک سنگ اینجا بهتر پودر نمک سنگ میریزیم رو محل گزیدگی یا نیش خوردم. این یک تریاق، یک زده سنب طبیعه تم شده اما اگر نیش حیواناتی بود که بیماری های عفونی دارن مثل بیماری هاری در سگ هار یا یک انسانی که آفت دهان داره آنجین گلو داره لوزهاش عفونیه دندوناش هم خلال نکرده مصفاک هم نزده حالا فرض کن اصابانی شده مثل بعضی افراد ما هم اسمشون رو از قدیم و جدی حالا از دست دیگری اصابانی شده پشت دست خوشی گاز گرفت. یه حیبون دیگه مثلا سگ هار گاز گرفته اونجا باید بلافاصله فاصله عبالتر موکم ببندی محل گاز گرفتگی رو با شامپو یا صابون بشوری تصاریف فهمدیم مومن ها چی گفتن؟ حالا بعد میتونید جاش رو از سرکه طبیعی استفاده کنی در بحث نیش زدن ها و بحث گاز گرفتگی ها. حالا بعدش شما یه پانسمان مقدماتی به نوع اورژانسی فوریت های پزشکی خانواده سریع انجام داریم حالا بعد از باب احتیاط عملیه مراجعه می به متخصص بیماری های عفونی که یک چکاب کنه یه آزمایش خون ازت بگیره این آلودگی ناچی از سم یا گاز گرفتگی وارد محیط خون و گردش خون و پامپاج قلب نشده باشه درست شد مومن ها چی کنه؟ این باب احتیاط عملیه. اگر نه سم خونسا کردی عفونت باکتریایی، ویروسیه گاز گرفتگی هم افین بردی ها ولی باز چون که اون خطرناتی ها باز باید مراجعه کنی به یه متخصص بیماری های آفونی این هم یک کلمه اینجا لازم بود تذکر دارم. چون 809 بیماری عفونی داریم ها. من یه دو تاشه تذکر دارم آه. ریختن سرکه روی عوض در محل گزیدن جانوران سمنی و برای جلوگیری از خونریزی خارجی و قطع جریان آن مفیده بعضی یا مومن ها کارای کسی انجام میدن شلختگی یا پلشتی به بخشی لفظان بد میشه بیتربیتی میشه مثلا فرض کنید یک جایی از دستش بریده حالا این میاد مثلا روی این قسمتش مثلا بول میکنه ادرار میکن یا جا خون بد میاد چه قلطی هم چه کاری؟ خب شما تو کوه نوردی میری سخرا نوردی میری دشت میری مرتر میری صحرا میری خب بابا یه شیشه کوچولو سرکه طبیعی تو جیبت باشه این کاری نداره بچه تو نیش زد حیمون موزی چیزی ماری اقربی روتیلی نمیدن انکروت سمی من مانند اینا یا مثلا بچه داشت بازی می‌کرد، افتاد یه جایی زخمی شد خب کاری نداره گاز استیلای با مصطفی قشنگ تو مشعمه از دارکون خریدی این هیچی هم جایی هم نمیگیرن اینجا محل رو شستشو میدید با سرکه ها بعد این گاز استریلی زنده افونی روش میذاری حالا بگه بعد هر وقت که برگشتی یا زودتر به نزدیکترین اورژانس مراجعه کن تو یه نگاهی کنم افونت به جای دیگه نرفته باشه س به جای دیگه نرفته باشه هنه باز با مسائل شیمیایی هم میتونن شستشو بدن چه اشکال داره؟ با تنتوریوت مثلا یا با محلول ساولون یا با دعفونی های دیگه مثلا بهتادین شستشو بدن چه اشکال داره؟ آدم احتیاط تام کنه هیچ اشکال نداره. اما اینکه سر به هوا باشه یا شلختگی یا پلشتی یا خوش را این ای اشکال داره. بله یه سرین موارد خاص استرار دستت دست از زمین و زمان از همه چی کوتاه حالا اونم ما توصیه نمی کنیم چون چیزای دیگه است که جلال خون رو بند بیاره دازم نیست آدم نجسکاری کنه اینم مؤمن ها این هست حالا در بعضی مواقع این همه فائده که چند روز مؤمن ها سه چهار روز درباره سرکه طبیعی انگور اسکریوسی گفتیم اما در بعضی مواقع برای بعضی افراد این سرکه چیه مومن ضرر داره حالا موار مذرات استفاده از سرکه برای بعضی افراد کسانی که پیر و سال خورده هستن زیاده روی در مصرف سرکه براشون zarar داره کسانی که سرد مزاجن و افت شدید متابولیسم بازال دارن مصرف سرکه و ترشیجات سرکه براشون zarar داره کسانی که مؤمنو سوداوی مزاجن یعنی ضعف اعصاب متوسط یا شدید دارن مومن ها یا بی حوصلگی زیاد یا استراب گلهوره شدید سودا مزاج اینها هم سرکه و ترشی سرکه براشون چی همون زرد کسانی که سرسوزه مهده دارن یوبوست مزمن دارن اینها هم سرکه یا ترشیجات با سرکه به تنهایی بخورن براشون زرد دارن. کسانی که مبتلا به بیماری های هستند، هستن مثلا صرفه خشک داره تازه این صرفه خشک براش پیدا شد اینجا نباید سرکه یا ترشی سرکه بخوره صرفهاش تحریک میشه بیشترش نظیره نظیره کسی که حساسیت به پروتئین ماست داره خب شبا نباید ماست و دوغ بخوره اگر نه تا چند روز بعد صرفه های خشک مکرر میکنه با اینکه که نداره برونشید نداره بلکه حساسیت این شخص به پروتئین ماست و دوغه خب شبا نباید ماست و دوغ به تنهایی بخوره حالا کسانی هم که بعضی بیماری های ریعوی دارن یه مثال روستون زدم مثلا صرفه تازه خشک دارن تو فصل پاییز بیشتر روح میده حب اینا نباید تحریکش کنن بیشتر بشه پس سرکه به تنهایی و یا ترشی سرکه نباید بخوره کسانی که درد مفاصل داره اینجا تحریک میشه درد مفاصل مومن ده نوعه تصال فهمونی وست بعضی انواعش چی؟ مزره وست بعضی انواعش خوبه این استحکام بیشتر میشه مثلا صباح یه قاشو پلو خوری پودر سنجد در یک لیوان شیر تازی گاو کمچر به جای قرص کلسیون دی ایرانی یا کلسیون قضروف آمریکایی بخواه جلوی پیشرفت آرتراز مفصلی میگر برای استحکام استخونه اسفنجی نک استخونه استحکامش بره بالا. اینجا میتونه ازونه دو قاشق چایخوری سرکه طبیعی سیب رو توی یک لیوان آب هم بزنه یا شباش بخوره. برای درمان و تسکینه درد ناشی از آرتریت مفید. اما بعضی دیگه از اقسامش نه نفعی نداره. من باید اضافه وزنم کم کنم. یا حالت ایستایی یک جا یا حالت نشستگی یک جا دو زانو یا چارزانو اگر زیاد این حالت میشینن یا این حالت زیاد یک جوایی میسن 6 ساعت 7 ساعت سه ساعت اینجا التهاب مفصل میاد خب پس این حالت هم باید تغییر یعنی تغییر حالتم باید بشه هر ساعت چند باره تغییر حالت بده تو دردهای التهابی مفصل نمیاد حالت ایستاییش جفوا نباشه. باید که هیچ سنگینش یک کم پای راست یک کم پای چپ بده. دیدید؟ یعنی رفتارش با خودش مثبت کنه، منفی نباشه. کسی که پروتئین چربی داده تو مفسر خب اینجا باید پرخوریش رو ترک کنه. بدخوریش رو تاع کنه. یعنی غذای چرب و چریش نخور. 50 درصد بیماریش خوب شد. بعد به مدت چند هفته جیره آب درمانی و همراه غذای مختصر مفید و سبک مصرفه تا پروتئینه این کلاف سردرگمه تو مفسر از بین بره دیگه نیازی به جرایی نباشه زمان بره یه بار دیگه نه این درد مفصل به خاطر اضافه وزنمه مثلا چل بی بیان پونزه کیلو اضافه وزن به بالا دارم. حالا هر کیلو اضافه وزن ده کیلو فشار اضافی به مفصل میاره من باید اضافه وزنم رو کم کنم این دیگه دارو نمیخواد به مریض بدیم دیدی همون چی شد باید اضافه وزنم رو کم کنم همه. کسانی که ضعف احشاء داخل شکمی دارم ضعف معده ضعف روده دارم اینا نباید سرکه به تنهایی بخورن و نباید ترشیجات در سرکه رو زیاد مصرف کن کسانی که خودشون نیروی جنسیشون ضعیفه و سوپر شولمه اینجا نباید ترشیجات زیاد بخوره حالش بدتر میشه سرکه نباید زیاد بخوره حالش بدتر میشه چون سرکه و ترشی سرکه افول افول شهوت اضافی میآورد اگر کسی خودش شهوت اضافی نداره از حد نرمالم کمتره و دوچاره بیماری خستگی جنسی هست. یا مشکل انتشار در آلت داره اینجا براش خوردن سرکه و ترشی سرکه زرر داره این کسایی که ضعف احشاء، ضعف آلات داخلش کم، ضعف نیروی جنسی حالا ازدواج هم کرده نمیشه که ناموسش معطله باشه که از دست شوهر بره شکایت کنه پیش قاضی شاره تو خاص خانواده استحکام خانواده, خانواده نباید بنیانش سست بشه درستشون اگر کسی زیاده روی کنه در مصرف خوردن سرکه طبیعی یا ترشی سرکه اگر زیاده روی کنه دچار بیماری عفش کازه یا بیماری استسقاع میشه هی علکی آب میخوره با اینکه بدنش نیاز به آب نداره همچنین زیاده روی در مصرف ترشیجات و ادویجات تند و تیز ضعف چشم میاره قدرت بینایی انسان چیکار میکنه ضعیف میکنه همچنین مؤمنا ضعف عمومی شدید میاره پوست بدن از حیث چهره زدرنگ رنگ میشه رخسار و چهره چی میشه زد رنگ مؤمنا و همچنین بدن کم کم رو به نحیفی میره لاغر شدن بیش از حد میره. با اینکه پرکاری تیروید نداره با اینکه سوء تغذیه نداره. با اینکه هش گرون نه نیست یعنی بیپول هم نیست. مسکینم نیست که خرج روزش هم نداره. هیچ کدام اینا نیست اما به خاطر پرخوری در مصرف سرکه و ترشیجات سرکه معاملا این حالت شده. درول شد معاملا؟ زردی رنگ رخصار و لاغری بدن می آورد حاجه بله. آیا می سرکه بخورم در بعضی مواقع و برام بسیار مفید باشه؟ میگم گم بله وقتی که غذای چرب و تیلیس خوردیم مثلا آبگوشت چرب مثلا کله پاچه مثلا جیگرسی هر تیکه جیگرسیا اندازه نیم کیلو پی و دم به کلسترول بد داره. تیک تیکه از ها چون چربی فشرده است. ترانس چربیش بالاست. ببین دادم چک خامه خوردی رولت خوردی حالا این مثال ها بزن. حالا مهمه وقتی که غذای چرب و خوردی ای ها اینجا یک چاشنی بسیار مفید که کلسترول بده کاهش بده نظر مبتلا به کلسترول اضافی بشی اینجا با آب گوشت چرب با کله پاچه با جگرسی ها و ماننده این چیکار چی کار یه مختصر سرکه بخور حالا دو قاشق چای خوری یه قاشق مربو خوری یا مثلا ترشیش که درست شده یه قاشق پلو خوری به همراه غذا بخور کافیه در صورتی لازم افراد سرکه بخورن با قضاهای چرباچیلیس یکی دیگه هم با شیرینیجات مخصوصا شیرینیجات شیمیایی از قنادی خریده مومن ها. چه خوش چه حتما در اینکه دو گوش حلقت لوزات و مانند او خلط اضافی خلت اضافی و مانند او تصاف فهم افتادگی لحات با هرد و چشم این حالت ها پیش نهیم اینجا باید چیکار کنیم آمنام؟ یه مقدار سرکه یا ترشی سرکه به همراه غذا یا بعد از شیرینی خوردن حتما بخور قبلش یایتونه گفتم کسر من الخبز یه تیکه نونخش به جو بخور تا شیرینی به دندونات آسیب نزن. و مشکلات ریشهی دندان پیش نهیم بعد از اینکه شیرینی خوردی نوش جان کردی قورتش دادی بعدش داریم که مزمزه و قرغره کن با سرکه طبیعی تا تورم لعوزه نگیریم تا افتادگی دو گوش حق مگیریم بحث لاحات پیش نیاد تورم لسه پیش نیاد خونوش لسه پیش نیاد رشد باکتریای های مزر بین لای دندان پیش نیاد پوسیدگی ریشه دندان هم پیش نیاد این هم مؤمن این کلمه در صورتی لازم است سرکه بخورم که با شیرینیها ها و آبگوشت چرب بخورم و توضیحی که دادم کسانی که اعصابشون ضعیفه یا دلشوره دارن دلواپسی دارن اینجا میتونن ترشی رو با ادویجات گرم درست کنن چجور اصل گرم داریم مثل عسل استخ دوست، عسل آویشن، عسل نعنا. می ترشیجات ترشیجاتو گنداز کنین. مثلا ترشی گل استخ دوست. ترشی آویشن، ترشی نعنا. فسا فهم بودین؟ حالا این گونه ترشیو بخوره کسی که سرد مزاجه. افته متابولیسم بازال داره شدیدا. یا مثلا چی آقا جان؟ کم حوصله، ضعف اعصاب خفیف متوسط داره. یا مثلا فرض کنید که خودخوری داره دلشوره داره دلوپستی داره از این ترشی میتونه مختصر بخوره یکی دو قاشق چای خوری یک قاشق مرب بخوریم تو بحث فوائد سرکه بودیم از جمله فوائد سرکه طبیعی سیب گفتیم پکتین داره اسید اسیتیک یا جوهر سرکه داره و خیلی مسائل دیگر از جمله کلسیوم حالا افرادی که کهنسالند که منبع منبع اصلی و زیاده دارا بودن کلسیوم چیه معامنا تو فراورده های لبنی مثل شیر مثل ماست مثل کچ مثل دوغ حالا افرادی که میان سال، مخصوصا کون سالن گاهی مزاجشون تغییر میکنه یعنی چاجه یعنی دو مزاجه میشن مثلا تب و مزاجشون بدنشون گرمه کف دست پاشون هم داغه اما معده و رودشون چیه سرده به اصطلاح بگیم دو مزاجه میشن کیرتش اما چی شاد حالا این گونه افراد چیزای سردی و معده‌شون به هم می‌ریزه مثلا شیر که می‌خوره تا چند ساعت این معده به هم میزنه گاهی تا چند روز این معده رودهش به هم میزنه درد معده میگیره شکم روش میگیره اینا همه اذیتش میکنه معده و رودهشو به هم میزنه اذیتش میکنه حالا دیگه چیکار میکنیم میگیم ماست یا شیر یا دوغش کم چرب باشه دوم یارتونه گفتم امام رضا علیه السلام فرمودن زنیان بخوره با ماستش اگر کسی ماست و دوغ عذیتش میکنه زنیان حال اگر خواست به همراه مثلا چی بخوره؟ ترشی بخوره حالا ترشی رو با فاصله نمیخوره فرض کن نیم ساعت قبل از غذا یا نیم ساعت بعد از غذا حالا یکی دو قاشق چای خوری سرکه یه یا ترشی که با سرکه سیب درست شده ولی با سبزیجات گرم مثل گل استخد دوست آبیشن نعنام یه چای خوری دو قاشق چای خوری محلول در آب میکنه میخوره حالا نیم ساعت قبل غذا، یا نیم ساعت بعد غذا، کسایی که نارحتی های گواریششون به خاطر سرد مزاجه حالا اینجا بدنش مومنا گرمه کف دست پاش داغه، ها طبعش گرمه یعنی معده و رودش چه به اصطلاح پزشکی قدیم تو طب مکمل میگیم این شخص دو مزاجه است حالا معده و رودش هم گرم کنه که های غیر عضوی دستگاه گوارش نگیره یعنی نفخ شدید شکم نگیره قرقرای شکمی نگیره اسهال دائمی نگیره حالا سرکه انگور عسکری مخصوصا سرکه طبیعی سیب دو قاشق چایخوری توی لیوان آب بخوره بعد از غذاش یه دونه سیب بخوره با همین توفالهاش با همین پیورهاش اینا جمع میکن اصرانه یه دونه انار شیرین بخوره با هستش به جوه اینجا معده جمع میشه قابزه همینه که گفتم قابزه. این هم یه توضیح بود که اینجا دادیم برای افراد مسن. اگر شکم روش دائمی دارن اگر قرقرهای شکمی دارن اگر معده و رودشون سرده چون که اینجا یک کلمه خارجی گفته آقای مارگوت هلمیس تو صفحه 55. مثلا اینجا یک کلمه اینجوری گفته اما دیگه توضیح ندارده مثلا بسیاری از مردم با افزایش سن دیگر تمایلی به خوردن شیر یا فراورده های لبنی ندارن و با وضعیت مزاجی اونها سازگار نیست و هنگام عمل هز به آن واکنش نشان میدهن یعنی نفخ شیکم میگیرن یا اسهال میگیرن یا گرفتگی می گیرن. می و از اولات معده میگیرن اسفاسم دستگوگوارش از جمله این مشکلات است خب حالا اینجا این پیر مرده یا پیر زنه یکی از منابع مهم تهیه کرسیون برای بدن از دست میده یعنی یه مطرم میبینی این که همسال از فامیله آقا بزرگ، مادر بزرگ، امه بزرگ، امو بزرگ، خاندهی جان، خاله جان تمین شیر و ماست و دوغ نمیخوره. تو سنی هستن که کم تحرکه. حالا فرودای لبنی هم نخوره به خاطر این عوارض. خیلی بیماری ها میگیره. یکیشم چیه؟ پوکی استخوان یا بیماری استئوپروز میگیره. خلاصه فهمیدیم مامانا خواستم توزیه سرد مزاجی و دو مزاجی بودن نداده. اون از خارج گفتم خب اما مال استئوپروز رو تو صفحه 56 پوکی استخوان می آورد یعنی بیماری استوپرست. این اینم چی مهمه اینو گفته که توزی به دادن پس سرکه سیب همچون سیب همچون خورما اینا داروهای طبیعی ضد پوکی استخوان تو جیره غذایی فرد و خانوار باشه بسیار خوبه تو روایات شیعه داره سر سفره‌ای که نمک باشه سرکه باشه خدا و ملائکش به اهل این سفره دائما درود بفرسن چرا چون بحث عافیت و سلامت فرد و اجتماع که کوچکترین واحد اجتماعی از نقطه نظر مهندسی علوم اجتماعی که جامعه شناسیه چیه خانواده است حالا سلامت فرد و این اجتماع کوچکترین واحد اجتماعی سلامتیشون ایجاد پا برجا استمرار هم داره یعنی از آفیتت حسن استفاده کردی و حفاظت کردی از عافیت موجود خود و دیگران تو شکر عملی نعمات موجود معلوم درود خدا و ملائکه نصیبت میشه کراوایات شاید تبول معصومین قبلا مستتون خوندم تجزیه و ترکیب مواد در بدن رو تسریع میبخشه چه خود سیب رسیده شیرین درختی که رو درخت برسه چه سرکه طبیعی درست شده از سیب شیرین رسیده روی درخت یعنی سیب سالم شستشوی سالم تهیه سالم تصفیه سالم نگهداری سالم همه موارد و آیت بشه سرکه سیب ها یکی از داروهای مهم طبیعی که تجزیه و ترکیب رو در بدن نرمال قرار میده یعنی واکنش‌های های احیایی و اکسیداسیانی رو به نوع نرمال انجام میده چون اگر اختلالاتی پیش بیاد، اختلالات سختصاز داخلی میشه اختلالات متابولیسمی پیش میاد نارسایی بیماری متابولیک پیش میاد اینم بعضی از دکترها مثل هانس، آدولف کربز در سال 1953 تحقیقی کرد چون یکی از اسیدهای موجود در سرکه طبیعی سیب چیه؟ اسید سکران و نقش او هست در تزیه و ترکیب مفید داخل بدن حالا در سرکه طبیعی سیب هست هر انسانی برای عمل تزیه و ترکیب 100 گرم اسید استیک در روز نیاز دارد خب اینجا اسید اسیتیک همون جوهر سرکه تو سرکه طبیعی هست. سرکه باعث تسریع و پیشرفت عمل تجزیه و ترکیب در بدن میشه. مصرف منظم سرکه گوارش رو تسریع و کمک میکنه تا اسیدهای چربی گرفته شده تا اسیدهای چربی گرفته شده از غذا رو بهتر مصرف کنه و بسوزونه تو بدن و گرفتن انرژی از کربوهیدرات ها چه قنده طبیعی چه قنده مصرف و گرفتن انرژی کالری بدن از کربوهیدرات ها مثل شکر مثل نشاسه مانندو سریع تر و بهتر صورت بگیره دیدیم آمنم چه اسید اسیتیک که جوهر سرکه باشه چه بحث این دیگه ای که تو تجزیه و ترکیب نقش داره اسید سیتران سرکه حتی تولید آب دهان بزاق دهان و تسریع می‌بخشه در تولید آنزیم دهان و نمی شد سنگ مجرای بزاقی بگیریم ما فقط سنگ سنگ کلیه یا سنگ سفرای یا سنگ مسانه نداریم سنگ مجرای چشمی هم داریم سنگ مجرای پاراتیروید داریم بعضی اینجا که ورم میکنه اینا نه آبسه داره نه پیله داره نه آفونت لسه داره نه پوسی دیگه ریشه داره هیچی نداره اینجا هم اوریونم هم نداره زخم سالک هم نداره ولی که بینید اینجاش چه کرده صفت, صفت شده حتی انسداد رگ های لمفاوی هم نداره و چی چیه این؟ این عدد هفت که زیر تیزی گلوت میذاری جای حنجره که سی به آدمه تخصصی حنجره و تخصصی گوش حلقو بینی عدد هفت که میذاری زیرش اینجا قده تیرویده دو طرف اون قده پاراتیرویده حالا مجرای پاراتیروید میاد قسمت فکر اگر کسی خلال مرتب نداشته باشه جایی که آبه مصفاک مرتب نداشته باشه و بعضی مسائله دیگه آب بدنش خیلی کم باشه ها. مجرای پاراتیروید بسته میشه چون که اون مواد زاید نمید بیرون کم کم بره هم میکنه سفت سفت میشه نزیر توده چربی زیر پوست یا تو بافت ها. حالا پیش این متخصص قدرت که بری یا فوق تخصص قدرت یا هورمون یا متابولیسم ها. با یک فشار خاصی این مجرا باز میشه سنگ مجرای پاراتیرایید میاد بیرون کم کم این مواد زائد تخریامیشه این ورم اضافی میخوابه. همین اینا رو از خارج توضیح دادم خواستم این یک کلمه‌ای که اینجا خارجی گفته سرک تولید آب دهان. یعنی بزاق رو هم آسان میکنه علاوه بر این حرفش که درسته چیزای دیگه هم فایده داره که از خارج توضیح دادم حالا بزاق در دهان انسان که به مقدار مناسب تولید بشه حداقل دو فایده مهم داره یکی کمک میکنه به هضم کامل غذا. یکی دیگه اینکه غذا تو مرتوب میکنه و نرم میکنه و بلعیدن برای شخص آسان میشه مخصوصا کسانی که ماهیچه مریشون ضعیب شده باشه در اثر سکته ناقص هگاهی اصلا از بین میره و باید همیشه به صورت غذای آبکی بهش بدی اگر یه ذره زمخت باشه اینه این گوشگوبه چرخ گوش یا آب میبگیری باید یه چیزی فشار برید تو دهنش تا او بره تو مری پایین تصابه فهم بودیم مومنان؟ اینم توضیح خارجی حاشیه بزن حتی بزاق دهان دارای آنزیمای خاصی است به نام آمیلاز آمیلاز و این میتونه قندهای ساده رو تجزیه کنه که قندی که مصرف میکنی یا نشاسته‌ای که مصرف میکنی در بدن به صورت ذخیره چربی در میاد این بحث اکسیداسیونی اما بحث واکنش های احیایی یا تجزیه‌ای حالا این چربی در جدار شکن رماننده او تو بحث احیا تجزیه این چربی تبدیل میشه به گلوکوز به اضافه آب حالا این قند گلوکوز بخوایی بسوزنی یه بار پانکراس و لوزن میده در ترشو انسولین نرماله خب فبه ها یه بار دیگه کمکاره یا کیست مثلا پانکراس گرفتین کمکاری شدید شده یا سرطان پانکراس گرفتین اصلا انسولین ترشو نمی حالا اینجا مبتلا میشی به انسولین تزریقی از 20 واحد برو تا 60-80 واحد به خاطر که کلیات از دست ندی یعنی یه اندام حیاتی از دست ندی که مبتلا به دیالیز نشی یا خونریزی پشت کوره چشم نکنی و مبتلا به تاری دید و سپس کوری دائم نشی یا مبتلا به آریتمی قلب یا نامنظمی زربان قلب نشی همجه ادامه بده تا 8 بیماری این دیابت اختاپوس درونه اشپایدم حالا مباحث خودمون رو گم نکن حالا روده کوچیک جذب غذا میکنه عین بعضی ویتامینا که از جدار معده جذب میشه حالا در بحث روده کوچیک چندها قند ساده یعنی نشاسته ها رو میتوانه بپذیره و اونها رو به سمت ارگانیسم های دیگر بدن راهنمایی کنه حالا مهمترین قند ساده قند انگوره که گلوکوز داره یا قند خورماست البته خورما چند نوع قند داره ساکاراز داره گلوکوز داره فروکتوز داره ساکاراز و گلوکوزش زیاده یعنی از هر 100 گرم خورما 65 الا 70 میلی گرمش ساکاراز و گلوکوزه حالا منظور مثل این قند انگور که گلوکوز داره یا قند خورما که یکیش گلوکوزه که درصدش هم زیاده حالا روده کوچیک تو بدن انسان. اینجا مهمترین قند که قند انگوره که گلوکوزه و ما نمیتونیم بدون قند ساده زندگی کنیم. باید این قند تو بدنمون باشه. درصدش از یه حدی میره بالا خطر داره. در نوجوان و جوان بین 70 تا 90 نرماله. در سنهای بالای 40 سالگی بین 90 تا 110 نرماله. از سنای بالای 50 از 110 تا 120 اشکال نداره دیگه 120 لب مرزه ولی اول و آخر تو بحث سوخت و ساز داخلی ما نیاز داریم به گلوکوز. پس جداره روده کوچیک باید بتونه جذب کنه خلاص فهم بودین مؤمنان قند ساده که گلوکز انرژی زا هست بحث کالری بدن اگر جوان باشه 2200 اگر مثلا پیرمرد بالای 50 سال باشه 1700 خب اگر کالری بدنت ناشی از سوخت گلوکز فراهم نشه که هم دیگ دیگ می‌لرزید هم 0 درجه هم هوا نشوره تو چله تابستون باشه می‌لرزید یعنی بیماری هیپرترمی می‌گیرید خب اگر جوان قند خونش بیا زیر 70 اگر مایه پیرمرد قند خونش بیا زیر 90 خود به خود می‌لرزید کمیه چلی تابستونم بلیزم پوشیده کتم پوشیده اوورکوتم پوشیده یه پتو هم بغاش اندخته هم داره میلازه این به خاطر چیه عموجون سدمزاجی شدید ناشی از افت متابولیسم بازال شدیدم چون قند خونش کاهش شدید پیدا کرده نزیر کسی که بدون متخصص متعهد در قدرت و هورمون به خاطر اینکه قندش بالانس بیاد انسولین تزریقی بزنه دوزج واحدش هم زیاد باشه مثلا این متخصص گفته 20 واحد بزن این از پیش خودش خود درمانی کنه 40 واحد 60 واحد به خودش بزن مبتلا به افت شدید قند میشه همین حالت پیش میاد که ضعف شدید میکنه تا صفاش میگه لازیم نمیخواد رو زمین نمیتونه دیگه وایسه مقصر خودشی که خود درمانی کرد که غلط بود باید طبق همون دوزج خاصی که متخصص متعهد گفت مصرف میکرد خب معنوش اون امامنا چی گفتم اینجا؟ ها. قند ساده انرژی رو که ما برای اعمال بدنی نیاز داریم از غذا میگیره. جویدن کافی غذا، چقدر تو آیات چیه گفته؟ حالا خارجی هم تو کتاباشون گفته. جویدن کافی غذا. امام صادق علیه السلام فرموده: جیدل مزق. ها خوب بجو غذا رو. با عجله نخور، حواس پرت نخور. نه جویده یا کم جویده تو گاز بزنی قورت بری این کارا نکن عوارض مختلف داره اسید میده تا بالا میبره سردل میکنی پوده میکنی رودل میکنی یوبوسد میاره عوارض زیاد داره مومنه امام صادق فرم بوده دل دلمز بود چش. حالا تو تخصصی تغذیه و مسائل مربوط به قدرت، هرمون و بقیه چیزا مومنه بحثه یعنی شما جلد اول قصول تب داخلی هاریسون بعدا بحث بیماری های گوارش و بحث بیماری قلبی و همچنین جلد هفتمش، مثلا بردان نگاه کن بحث قدرت و هورمون و متابولیسم و اسیده آمینه و املاح و ویتامینا ببینید بعضی حرفایی که دارم میزنن مومن ها زحمت کشیدم پیش رفت که علوم تجربی و حسی اشکال نداره آفهن کرد. اما می‌بینی بعضی چیزاشون اصلا اینا قبلا 14 قرن قبل 13 قرن قبل معصومین ما چها و جون همه اینا رو فرمودن یک کلمه توضیح دادم جویدن کافی غذا این کار رو سرعت می‌بخشه یعنی روده کوچیک جذب قند ساده کنه از جداره‌ش سرعت پیدا می‌کنه یعنی قند خونت افت نمی‌کنه بیماری هایپر هم نمی‌گیری دچار ضعف عمومی شدید نمیشه دستفاض نمیلزه ناشی از کاهش قنده خون به نوع شدید کالری و انرژی بدنتان از حد نرمال کمتر نمیشه حالا جویدن کافی غذا این کار رو سرحت میبخشه حالا کاتالیزور مجاورتی هم کنارش بذار با مصرف سرکه هم تولید بزاق بیشتر میشه نعم شدن غذا هزم اولیه غذا که تو دهان آمادگی لازم غذا برای هزم بعدی که تو معده هست برای همشه باز برای هزم بعدی بعضی ها تو روده میدن. باز برای هزم آخر هزم نهایی که تو کبده کبد برای بدن پونستت کار میکنه یکیش هزم نهایی غذاست یکی دیگهش تولید سفراست یکی دیگهش کمک به تولید چی؟ گویچ های قرمز خون. اینو تا حالا سلول های توری مغزخوا ح های دستبیی می بینمان گویچ های قرمز خون است شما تولید گلوول های قرمز. من فواید دیگه ای که معامنا داره 500صد کار برای بدن میکن کبد این هم معامنا اوسه کبد خوب بود، اوسه ت خوب بود، اوسه درمان و پیشگیری تصاب شرای شراین خوب بود رووبگیری از رگوا خوب بود. دوسته یه پوست بدن شفاف بشه کمک و لکای قهوش از بین بره خوب بود دوسته خون مردگی پوست که زودتر تصریب ببخشه خوب بود و اگر کسی مثلا خار پاشنه پا داره یا مثلا فرض کنید که میخچه داره یا مثلا زیگل داره یا مثلا دومل داره خب اینجا سرکه طبیعی سیب هر روز روش بگذاره از شب تا صبح یه پارچه رو نمور کنه از سرکه سیب روش بذاره دورش مشمار بنده در بهبودی همه اینا نقش داره رد زخم رو پوست نمیمونه این هم یکی از فواید چی همونجون سرکه طبیعه اما اگر آدم بیش از اندازه مصرف کنه زرر پرخوری سرکه یا ترشی سرکه زرر نظیر پرخوریم نمک تعام که زرر خب اینجا به این دو گرم پ گرم تا ه گرم اینکه نهایت مصرف نمک تعام برای افراد سالم تو 24 ساعت. اما در داخل و خارج کشور ها مردم به این 10 گرم تا 20 گرم نمک مصرف میکن. دچار بیماری های مختلف میشه. یکیش فشارخن نرسانی با اینکه استرس ندارم فشارون نرسی نمیشه صرف کسی که شام دیر بخوره بعد تخمور آب‌پز یا رو یا آملاتو یا کوکو بخوره اینم هم دو چهار فشاخون میشه اون شبم خوابش بد میشه خوجای تو تو رخته خواب هی بول میخورم جلجال میخورم چه خوابم نمیاد بخاطر اینکه شام دیر خوردیم چوام سه چربی کلسترول بد زرد بالاست از که با روغن صاف کردی یا املت درست کردی یا کوکو درست کردی خرابی رو خرابی حالا بدخواب شدیم شام دیر خودی هم قضای چند تصابه فرمونیم مهمنا مصرف بیش از اندازه حل کنیم این ها کشه مخصوصا تو افراد مسن، افراد کهانسان این خطر دو چندان میشه چرا؟ چرا؟ فشاخون این بره بالا فشاخون شونزه هیچده بیسده بیس بیس سه الان که هر لحظه پارگی مویرنگ رخ بده حالا اگر تو مغزت رخ دادا سکته مغزی به نام پارگی مویرنگ مغز رخ داد منجر به مرگت میشه هم نگه زود به ارجانس نرسن لذا تو روایات شیعه دارن خدا رحمت کن آیت الله شیخ محمود اکبرزادر تو کتاب الاربعینات که تو جهان اسلام این کتابش نظیر نداره از شیعه ازتانی از فقه و حدیث و تاریخ و ادب هر روایت بوده که در او لفظ 40 و ال بوده آورده حالا یکی مباحث خودم میخوام بگم مثلا خارجی یه مطلب گفت اما کم گفت حالا از اون بیشتر امام صادق علیه السلام فرموده میگه اذا بل 40 هنگامی که سن شخص به 40 سالگی رسید غذای چرب نخوره و اگر خورد نره زود بخوابه یور و تلفجه مرگ ناگاهانی میاره حالا حواسش پرت شد غذای چرب خورد ترانس چربی بالا خورده میگه نخوابه اینقدر قدم بزنه تا چربی اضافی که خورده بسوزه و از بدنش دفع بشه بعد بره بخوابه قربون امام صادق و اوف برم. همچون خدای رعوف بالعباده امام رعوف همه چهار در محصوم از جمله امام رزای رعوف همه شما رو به خدا میسپنیم اللهم صدی علی محمد آه.